هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرائیل و میکائیل است بداند که خدا یقینا دشمن کافران است